این داستان دره جادویی نزدیک یه دره جادویی دو کوه بلند بود یکی در شرق و یکی دیگه در غرب هر کوه محل زندگی یه پادشاه افسانه‌ای بود که هر دوشون که بیرا ملکه زمستون بودند یکی از این دو نفر سفید بود و کمان نقرعی و نیزه های تلایی داشت و بسیار در تیراندازی ماهر بود اما هر روز فقط میتونست یه تیر به سمت دره پرتاب کنه برادر دیگش سیاه بود و در سمت چپ سینش لکه قرمزی دیده میشد اون اصلی نداشت اما جنگ جوی بسیار وحشتناکی بود چون هر لحظه که اراده می کرد می تونست خودش رو نامرعی کنه. وقتی هم که نامرعی می شد جز اون لکی قرمز که روی سینش داشت چیزی از اون دیده نمی شد. اون بسیار قوی بود و در جنگ با دشمنان خودش خودش رو نامرعی می کرد و آروم دشمنان رو از روی زمین می بالای سر میبرد و محکم بر زمین میکوبید مهم نبود این دشمن چگونه و تا چه حد خودش رو مسلح کرده باشه دشمنان وقتی با این حریف نامرئی روبرو میشدند ترس و وحشت به جونشون میافتاد و فقط لکی قرمز کوچیکی رو میدیدند که در هوا با سرعت به این سو و اون سو حرکت میکرد شاه سفید همسر زیبایی به نام نور چهره داشت که بزرگترین و لذت سرگرمی این زن زیبا گردش در دره و دامنه کوهستان بود جایی که آهوهای زیادی در علفظارهای سبز اون میچریدند وقتی نسیم ملایم بر بوته ها زیدن می گرفت، عطر گلهای خوشبو فضا رو معتر می کرد. نور چهره در همین موقع میون مزاره ذرت به گردش می پرداخت. شاه سیا همسری نداشت و به شاه سفید که تمام روز رو با همسرش با شادی و خوشحالی می حسادت میکرد خلاصه این دو برادر چشم دیدن هم رو نداشتن شاه سیاق همیشه خودش رو از دید تیرانداز معروف دور نگه میداشت و از تیرهای طلایی او به شدت میترسید یه روز تابستون وقتی عشقه های خورشید تمام دره رو میپوشندند نور چهره در گردش روزانه خودش در دامنه سرسبز کوهستان مشغول جمع آوری گلهای وحشی بود. سکوت تمام جهان را پوشونده بود و نه آواز پرندهی به گوش می رسید و نه صدای وزش بادی. دریاچه ها در خواب بودند و رودخانه ها خودشون را طوری جمع کرده بودند که به زحمت میتونستند صدایی به بلندی آه نوزادی در خواب ایجاد کنند نور چهره هنوز قصد بازگشت به خونه رو نداشت شاه سیاه از خونه کوهستانی خودش مشغول تماشای دره بود در حالی که شاه سفید در خونه خودش در خواب بود شاه سیاه متوجه شد که نورچهره مشغول جمع آوری گل هاست و هر لحظه داره به قلم او نزدیک و نزدیک میشه. او بدون سر و صدا خودش رو به جنگل انبوهی رسوند که نزدیک کوهستان محل زندگیش بود. بعد از اون پنهون شد و منتظر موند تا زن زیبا نزدیک بشه و بتونه به موقع اونو بدازده. نور نورچهره فکر نمی کرد خطری تهدیدش می کنه. پس خودش رو به انتهای جنگل رسون تا گلهای زیبایی رو جمع آوری کنه که زیر درختان شکسته بودند اون با زیبایی خودش جنگل رو روشن کرده بود همونطور که داشت گلهای جادویی را تماشا می کرد دستی سیاه و بزرگ اونو گرفت و بلند کرد. زن زیبا از ترس می درزید و تلاش می کرد خودشو نجات بده. شاه سفید با شنیدن گریه های زن که شبیه آوازی غمگین فضا رو می شکفت و از سینه بلند می شد از بالای کوه به دره نگاه کرد و در یک لحظه فهمید که چه اتفاق بخشتناکی افتاده است. شاه سیاه همسر زیبای اونو دزدیده بود و به سمت سیاه چال تاریک وسط کوهستان میکشوند. شاه سفید قادر نبود کاری برای نجات اون انجام بده چون امروز از سهمیه پرتاب تیرش استفاده کرده بود و نمیتونست تا پایان شب تیر طلایی دیگه ای رو پرتاب کنه. شب شد شاه سیاه در قلعه خودش از شادمانی شروع به رقص و پایکوبی کرد چون تونسته بود همسر زیبای شاه سفید رو به اسارت بگیره در اون طرف شاه سفید وقتی صدای ناله ها و گریه های همسرش رو از سیاه چال شنید از غم و غصه داشت موجر می شد هم تاب نیاورد و بیهوش شد نور چهره تمام شب وقتی شاه سیاه روی کوه مشغول پایکوبی بود و آواز پیروزی میخوند، اشک ریخت شاه سیاه هنوز بالای کوه می‌رخصید که بادی از کوه بلند شد و دره را کرد درختها را تکون داد و ناله درختها تمام شب مانند گریه نور چهره به گوش آدمیون رسید اونها که بیدار شده بودن می گوش کنه این صدای عجوزه شبه چه صدای وحشتناکی داره صبح که شد شاه سفید به هوش اومد و با دیدن اولین پرتبای خاکستری رنگ خورشید، چشمهاش پر از عشق شدند و عشقهاش روی گلها و سبزها چکیدند او با حالت گریه بالای کوه رفت و اونجا سرگردون اطراف رو گشت وقتی صدای ناله همسرش را چال شنید قلبش به سختی گرفت شاه سیاه دست از رخص و پای کوبی برداشته بود و در بالاترین نقطه کوه ایستاده بود او فریاد میزد. ها ها چهره زندانی منه اما وقتی دید شاه سفید کمون نبریش رو آماده کرد و یک تیر طلایی از تیردان خودش بیرون کشید ساکت شد شاه سیا فریاد زد تو چطور جرأت میکنی به من تیراندازی کنی؟ شاه سفید پاسخ داد یا همسر من رو آزاد میکنی یا تو رو هدف میگیرم صورت شاه سفید مانند برف سفید و مانند یخ سرد شده بود. شاه سیاه بلند بلند خندید و درست وقتی که برادرش کمون خودش رو بلند کرد و نشونه گرفت خودش نامرئی نامرعی میکنه. حالا شاه سفید ناپدید شده بود و به جز یک لکه قرمز چیزی از او دیده نمیشد. شاه سفید ای به سمت مشرق قیره شد و به اون لکی سرگردان که لحظه به لحظه روشندتر و براغتر میشد نگاه کرد. کمون و تیر آماده بود. صدای خنده جسورانه شاه سیاه چون بادی وحشی به گوش او می رسید و او بدون اون که دیده بشه بالای کوه مشغول شادمانی بود و اون لکی قرمز به سرعت بالا و پای می رفت شاه سفید سعی می کرد لکی رو هدف بگیره سپس زهر کمان رو کشید و تیر طلایی به پرواز در اومد هوا رو شکافت و با سرعت برق به لکی قرمز اصابت کرد این لکی قرمز قلب شاه سیاه بود بنابراین وقتی فریادش تمام دره رو پوشوند شاه سیاه برهنه بدون اینکه دیده بشه روی تخت سنگی افتاد و مرد در حالی که میون لکه قرمز نیزه طلایی رنگی می درخشید با مرگ شاه سیاه در سیاه چال باز شد و نور چهره با زیبایی خودش از اون بیرون اومد و زیباییش دره رو روشن کرد. رودخونه افسرده جون گرفت و دریاچه ها از روشنی برق زدند. پرنده ها آوازهای دلنشین خودشو از سر گرفتند و شاه سفید از خوشحالی به رقص و پایکوبی پرداخت. لاست نامرئی شاه سیاه همونجا نوک کوه افتاده بود تا اینکه که غروب پیرا به دیدن پسرش اومد او به محلی رفت که شاه سیاه به قطر رسیده بود از کیسی که به همراش داشت داروی شفابخشی را بیرون آورد و روی زخم او مالید به محض اینکه این کار انجام شد شاه سیاه به زندگی برگشت و چشمهاشو باز کرد و سیاهی به جهان حاکم شد اون دوباره در این فکر بود که چگونه میتونه با برادرش شاه سفید مبارزه کنه و همسر زیباشو به اثارت بگیره کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی نشانی ویبلاگ ما ام s t i نوکت b مهران دوستی .dot کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بوستانی